من سلام عرض می‌کنم و چقدرم خوشحال شدم که جوانای ما واقعاً امروز مقداری مقدار به معلومات من اضافه شد. خب همطور تو که می‌بینین من بالای 18 سالم و ولی از یه بچه‌م دوست دارم یه چیزی یاد بگیرم. در هر حال وطن ما احتیاج به شماها داره. ماها که دیگه باید پرچم رو بدیم به دست شما. من سیمین خاکپور هستم برای اینکه شوهرم نارد نشه، سیمین خاکپور بردسه هستم. چون اون وقت ممکنید دلخور بشه از من. من امروز یه خورده آمادگی ندارم. دکتر و همراهانشون قافلگیر کردن چند روز پیش. و حالا هرچی که هست، بتونم در اختیارتون بذارم. ارگانیک چیه؟ همه یک پرچم گرفتن، همه یک برگ سبز گذاشتن روی متایشون و میگن ارگانیک ارگانیک و ارگانیک خب ارگانیک فقط این نیست که سم نزنیم کود نزنیم ارگانیک مسائلی داره که صدای من میاد یا نمیاد ارگانیک مقرراتی داره که باید رعایت بشه همینطور نمیتونه هرکس بگه من ارگانیکم یه جایی رفته بودم میگفتن که ما سم و کود سم نزدیم، کود نزدیم، کود حیوانی چیز میکنیم، مصرف میکنیم، گفتم که خب اینهایی که پردقالایی که انقدیه شما هیچ حسنه نمیگیرد، نه او اولی که این انقدی میشه ما یه دو دفعه سم میزنیم، یعنی اینو ارگانیک میدونن، ولی ارگانیک یادگار اجداد ماست، یادگار، که چهار عنصر رو برای ما مقدس دونستن یکی خاک، یکی آبه، اون موقع بود، الان انرژی، و یکی هم حواست که متاسفانه در وطن عزیز ما به وفور نعمت همه رو نابود کردن که این چهارده ساله، من درست چهار هفته بعد از زلزله بم اومدم ایران که متوجه شدم هموطنان من سم و کود و شیمیایی رو مثل نقل و نباد به کار می بردم. الان چهار پنج ساله که کلمه ارگانیک افتاده توی مغزها. چهارده سالی دارم زحمت می‌کشم، ولی هنوزم موفق نشدم که قانونی رو قول دادن انجام بدن. قانون بذارن برای همین ها. ولی انشالله که تا عمرم باقیه بتونیم این موفقیت رو ببینیم. چار عنصر <تصفح> ارگانیک یکی از چیزهایی که باید ارگانیک بشه اون کشاورز یکی زمینش رو باید احیا کنه من میبینم که سالی سه دفعه زمین رو میکارن به زور این کودای شیمیایی گفتم بهشون گفتم من اگر زمین بیگناه، اگر زبان داشت فریاد میکشید آخرم زمین جواب میکنه. در انتها میگه ما نمیدونیم چرا زمین دیگه با ما بازدهی نداره. گفتم چند دفعه زنگ زنگ زنگ. سم دفعه. گفتم خوب خدا پدرت بیا هم هموطنان من محتاد به سم و کود شدم. اگرم لازم نباشه میزنم. آبمون آلوده. خاکمون آلوده. و هوا که چه کنم؟ انرژی هم که وفور نعمت. من می‌بینم مثلا در خانواده ها اینجا نشستن، تلویزیون اونجا بدونه که کسی نگاه بکنه داره اونجا موزیک میزنه اینجا هم داد میکشن همدیگه رو صدای همدیگر بفهمن به من در بچگی یه میلیونر یاد داد که پشت سرتون نگاه بکنید چراغ زیادی رو خاموش کنید در وجود نسل فعلی نیست در هر حال من از حاشیه خارج نشم که بتونم مطلبم برسونم اجداد ما این چهار عنصر رو مقدس دونستن، ما فراموش کردیم. ما افتادیم به این دلالایی که کود و سم میفروشن، در تومه اونا قرار گرفتیم. خارجی ها این مسئله رو متوجه شدن. در سال 1924 بود که آقای قود چیکار باید میکنم؟ این تکنیک رو خب، اینا, اینا ورمی کامپوست آقای اشتاینر رو بذارید اگر ممکنه من نمی دونم این نمونه از باغ هایی که ما داریم باغ کیوی که اینجا باغ خرمایی ماست و این علف که من می بینم مزاره رو مثل کف دست بدون علف گذاشتم در حالی که این علفا ها دو سه تا کار مهم میکنن یکی اینکه آب و بیشتر نمیگرم دارن موضوع مهم اینه که حشرات مفیدی که میتونه حشرات مضر بخوره اینا رو خوابگاه اوناست حالا کوتاه بکنن خوبه ولی نه اینکه از بین ببرن هیچ صدمه ای به درختم نخوادزه حشرات مفیدو از بین میبرن یکی سمکشی یکی این که مثل کف دست زمینشون رو صاف میکنن و دیگه حشرات موزی میدان رو برای خودشون می آی دکتر من گفتم بالای 18 سالم تکنیک هم زیاد وارد میم. این خورماهای ماست که در سیستان سال بلوچستانه اینا نمونه های است که ما در کنترل ماست، و خوشبختانه امسال خورمه های سیستان بلوچستان از پارسال تالا که پاکستانی ها تا 500 به زور میخریدن امسال این بلوچه نازنین به من میگفت خانم میخوای ما از این باق کیلوی سه هزار من فروختیم با افتخار میگفت خب راه های سعبال عبوری که ما تحمل کردیم یکی از ایده های من این بود که اونها مستحق کمکن. سر مرز های پاکستان به دو دلیل من اینجا رو قبول کردم در حالی که معاون وزیر استانش رو میخواست بده گفتم میشون باید ثبر کن. به خاطر اینکه اینا اگر از نظر مادی تامین بشن دو کارو نخواهند کرد یکی خیانت به مملکت ما کنن نمیرن جاسص اون طرف مقابل بشن. یکی اینکه وقتی، پول تو دستشون بشه، دیگه قاچاق نمیکنن و منطقه محرومه که ما جونمون رو تو دست می‌گیریم یعنی یه بار اون که میاد هم پول رفته، هم چیز رفته حالا من میگم یه نفر به من کمک کنه اینجا دریاچه هامونه که از وقتی که از افغانستان این آب رو به روی سیستان بستن هامون خوش شده بود و یه خربزه هایی هست که هم مزه خیار میده یا هم یه حالت هندوانه بهش میگن اینها اومدن این هندوانه ها رو می کاشتن که الان امسال مثل اینکه آب بسته بودن یه مقدار دیگه نمیتونن بندگان خدا این و من باید بزنم اینا خرماهایه که چیز موزهایی هست که در چاوهار باز هم در اختیار ماست که ما کمک می‌کنیم اینا این مال سیستان بلوچستانه مناطق هست که ما از استانداری هم از جهاد خانمندس کمک هم پلیس چی میشه اونجا نیرو انتظامی و هم سپای پاسداران اجازه میدن در یک ساعتی ما بریم که به شب بخوریم که دیگه تومه حالا امسال نزدیک بود تومه داهش قرار بگیریم و اگر هم اونا نباشن بچه های خودمون کمین میگیرن که هر خزنده و پرنده رو یعنی نمیدونن کی در اونجاست که ما امسال این گرفتاری رو داشتیم ولی برای من واقعا لذت بخشه که اینها به نوایی رسیدن. خوشحالم چون ممکنه مثلا پدر این بچه دو دوتا خورما داشته. یعنی چهار هزار کیلومتر ما هکتار به اصلاح در این دزرت نه. کویر. کویر. در کویر ما چیز داریم، این خورمه هایی داریم که ببینید مثلا ماشین خراب میشه ما باید هلش بدیم تا بره نمیدونم خیلی داستان ها هست ولی من با جان و دل این کارو میکنم چون میگم هموطنی به جایی برسه که دیگه دلال منفعتشو نبره این تموم شد آقی من ببینید من, من چهار ساله با تکنیک جدید آشنا شدم. اینی که به دست من رو نباید می پر دینش. آها آه اومده اینا یه گرده از اون آم که اونجا خرما دارن من اینا رو تندتون میزنم و برگشت که خب من جزوه خودم رو در میارم یه دونه ببینم چیا رو نگفتم براتون بگم همینطوری که گفتم ما همه رو فراموش کرده بودیم در سال 1924 آقای رودولفشتاین که در کواسی بود که کشاورزا ازش مسلحت خواستن که ما برای بهبود محصولمون چیکار کنیم ایشون به همه توصیه کرد که راه داینامیک رو شروع کنن. داینامیک خیلی بالاتر از ارگانیکه و ایشون خب متاسفانه سال 1925 درگذشت ولی راهش رو یک ادعاء ادامه دادند. ما هم تقریبا من یادم محصول بودم در سال 1971 یا 2 حرکت سبز شروع شد و ما میتونیم بگیم با اون موج اومدیم بالا همسر من در آلمان 35 سال تولیدات روغن ارگانیک داره که خب دور دنیا من بایشون با بودم جاهایی که محصول میکاشتن هاشیه های کلمانجارو و دو دور و, برزیل و از هر جایی بالاخره یه چیزی یاد گرفتم وقتی که بم نشسته بودم بعد از چهار هفته زلزله دیدم که هموطنان من اصلا سم و کود مثل نقل و نباد میخورم و متوجه شدم که سونامی امراضه نه تنها فقط سونامی سرطان بلکه تمام امراضی که ممکنه پوکی استخان، ایم سرطان نازایی ها سکته های زودرسی که 26 سال یه جوان چرا باید سکته کنه اینها همه تغذیه سم و کوده. متاسفانه چند سال پیش من متوجه شدم که سم ها و کود هایی که چینی ها از تاریخ گذشته رو که اون ریشه هم قطع میکنه دارن مصرف میکنن، سمهای قدغن و خب خوشبختانه جهاد کشاورزی هم یه مقدار همکاری کرد، خیلی چیزها رو برد کنار و آقای ایشتران چیز راهش رو دنبال کردن که انجوهایی برای ارگانیک کردن شروع به رشد کردن که الان خیلی هم تعدادشون زیاده خدا کنه ارگانیک واقعی بدن من شرکتی دیگه ای رو داشتم دیدم نه به درد وطن من نمیخورن هدف پولسازی من قبول نکردم بچه های سبز آلمان که الان شرکت سرس رو دارن به ایران دعوت کردیم من همسرم و الان راه همون ارگانیک قدیم رو میرن که گاهی خب شاید کشاورز از دست ما خسته بشه خودمون خسته تر از اونا میشیم ولی چیزی رو تحویلی مردم میدیم که دیگه خاطر جمع شده ما مثلا برای اینکه خاطرمون خیلی جمع بشه هم از خاک آزمایش میگیریم هم از آب و هم محصول برگ میوه اینا رو در کیسه هایی که من گذاشته بودم ولی مثل اینکه دکتر نمیتونین نشون بدی نه؟ اینا رو در کیسه ما قرار میدیم که حت وقتی می حتی وقتی بسته میشه حتی جرسقیل هم نمیتونه بازش کنه یک بسته کیسه رو به خود کشاورز میدیم باید تا شیش ما نگه داره یکی برای خودمون نگه میداریم تو انبار یکی هم میفرستیم در آلمان که اق و شاید همه یک لابراتور بنو ملالیه که اینها به ما که کردن به ما مینین اعلان میکنن که سم داره کود داره نداره این با فقط به اینم ما اکتفا نمیکنیم ما باید مطمئن بشیم که اون کشاورز زمینش احیا شده مدیریت باگیر خودمون تعلیمشون میدیم تونسته چیز کنه مدارکی که به، یعنی مهمترین کاری که ما باید به اینا از اینا می‌خویم اینه که به ما مدارکی بدن که اگر مثلا 5 کیلو خورما فروختن در یه جای 50 کیلو اضافه شد و سمکود داشت ما بتونیم ردیابی بکنیم تا برسیم به کشاورز دیگه کشاورز اگر خودش خطا نکرده یکی دیگه اومده سرش کلا گذاشته توی یه لیست سیاه نره چون وقتی کسی تقلب بکنه و بخواد مثلا یه همچین کارهایی خود کشاورز بکنه دیگه پنج سال هیچ شرکتی اجازه نداره به این جواز بده بنابراین فرقتم تموم شده؟ یه دقیقه دیگه؟ خب در هر حال میخوام بگم که اینایی که جانم؟ نه داینامیک که آقای دار چیز کرد داینامیک الان هم میتونن بدن ولی چیزی که یه قدم سختتره رو چیز من فکر می‌کنم الان من چیزهایی که اتحاد اروپا و نو پی، مالی آمریکا و جاز ژاپن و و چیزهایی دیگه میدیم به درد کارشون میخوره ببینید من وقتی مثلا یکی میگه من این محصول رو دارم در بیابان پسته شو بر من چیز کنه خود من بهش میگم چرا میخوای سال دیگه باز دوباره یه صورتحسابی برات بیاد یه پروژه دیگه بشه شما لیست کامل اگر صد تام چیز گیاه در اونجا هست به من بده من یک جواز با همین پول در یک سال به شما میدم چیزهایی که در بیابان آزمایش بشه وقتی طبیعی باشه اینها سال اول میتونن جواز بگیرن متاسفانه بعضیا مسین که سه سال هم از مردم پول می‌گیرن، بعد جوازم میدن البته باز هم بیابان می‌تونه آلوده باشه از کارخانه که اطرافش و از چیزایی که هست اینها ما به همین دلیل آزمایشش میکنیم اگر مسئله نداشتن والای چشمون آقای من مثل اینکه تمام این نقطه هایی که نوشتم چیز کردم. شما اگر سآلی دارین اگر اجازه وقت میدن من در خدمتتونم و من اون چیزهایی که نوشتم مثل اینکه شما مثل اینکه اون ارگانیک ارگانیک هم میخواستی من بگم من در یه باقی رفته بودم و اینها گفتن که ما می‌باریمه یه باقی که ارگانیک ارگانیک گفتم چشمم میام و رفتم و یه چند نفری هم ایستاده بودن صحبت میکنن گفتم من یه دوری به باغ میزنم میام من معمولا خاکو بوم میکنم بعد دماغم یه خورده تیزتر از بعد هم که رفتم اومدم یه بهی رو از درخت چیدم بعد اینا دیدم با نگاه میگن که، خانم خاکپور، ارگانیک، ارگانیکه, ارگانیکه. یه بویی به دماغم خورد که من احساس کردم ارگانیک، ارگانینه باقمونه رو دیدم اینا اصرار دارن که به من بگن این ارگانیکه صداش کردم گفتم بیا اینجا گفت گفتم که چند دف شما کودو سمزدی؟ زده دو, دو دفعه اینا به من گفتن که شما از کجا فهمیدین گفتم خوش وقتی آدم که سال گدایی کرده شب جمعه رو میدونه و این جریانی بود که ما در مسیر خودم خب از این چیزا خیلی ما توجه به اینی که اونا قسمم بخورن ارگانیک ارگانیک نمیکنن ما کار خودمون میکنیم هم سخت میگیریم و متاسفانه چیزهایی که ما داریم جواز میدیم بیشترش صادر میشه امسال هفتصد تن پنجه تون مضافتی از استان کرمان دارن میبرن خارج همین سیستم بلوچستان در حدود 6000 هزار هکتار که الان یعنی سالهای در یک سال آینده اگر ما میخواییم به 7000 هزار هکتار برسونیمش یعنی نفر اول خورما در ایران خواهد شد در از نظر ارگانیک ما اولین در دنیا اولین نفر به محصول ارگانیک خورما داریم بنابراین من تا من پیر نیستم هم انرژیم جوانه هم خداوند کمکم میکنه میخوام تا زنده هستم هم قوانینه. اینجا رو ببینم که برای بهبودی این که هرکس نه یاد ارگانیک بگه سیچل درصد بخواد اضافه بگیره. بارها من در صحبت با آقایون دست گفتم. گفتم اگه مردم میخوان سم کود بخورند چرا سی چل درصد اضافه بدم؟ در هر شما اگر میخوان ارگانیک بخورید، اول بپرسید شما جواز دارید؟ میگه بله، کوش. به من نشون بده مالکیه جواز تاریختار اکثر کسا میگم جواز فروش ها هستن که و شنگ. یه تلفنی هم پول میگیرن جواز میدن بعد دیگه من فکر میکنم چیز کردم وقتم هم تموم شده اشاره میکنم در هر صورت خیلی ممنونم و خوشفق شدم انشالله بتونیم در جوار به کمک شماها این آرزوی من